داستان ششوم تقدیم به اسمه با عشق و نکبت. تازگی ها با پست هوایی دعوتنامه ای برای شرکت در یک جشن عروسی به دستم رسیده که در 18 آوریل در انگلیس برگزار می شود اتفاقا برای رفتن به این عروسی دل توی دلم نبوده بنابراین همین که دعوتنامه رسید بیان که فکر هزینه اش بکنم پیش خود گفتم با هواپیما راهی سفر خارج میشوم اما از همان وقت موضوع از جنبه های زیادی با زنم که بی اندازه آدم معقولی است سبک و سنگین کردم و با هم به این نتیجه رسیدیم که فکرش را از سر بیرون کنم چون به کلی فراموش کرده بودم که مادر زنم چشم راه است که دو هفته آخر ماه آوریل را با ما بگذراند. راستش من فرصت ندارم مامان گرنچر را زیاد ببینم و او هم عمرش را کرده است آخر پنج و هشت سالش است. خودش هم این را قبول دارد. که فرقی نمی کند و هر جا باشم خیال نمی کنم از آن آدم هایی باشم که برای برهم زدن ازدواجی که آخر عاقبت خوشی ندارد دست روی دست می گذارند. بنابراین دست بکار شدم تا چند مطلب افشاگرانه را درباره عروس آنطور که شش سال پیش او را شناختم روی کاغذ بیاورم. چه باک اگر یاد برای یکی دو لحظه اوقات داماد را که نمی شناسم تلخ کند چون قصد من خوشحال کردن کسی نیست بلکه راستش قصد من بیشتر تهذیب است آموزش است در آورید 1944 من یکی از حدود شست نظامی آمریکایی بودم که در دهوان انگلیس زیر نظر سازمان ضد جاسوسی آنجا یک دوره آموزش حمله را می‌گذراندیم که کم بیشت بود حالا که به گذشته نگاه می کنم به نظر را می رسد که ما شست نفر از این نظر که هیچ کدام اهل بگو بشنو نبودیم جمع نسبتا کم نظیری را تشکیل می داریم. ما همه به طور کلی اهل نامه نوشتن بودیم و در خارج از ساعت خدمت تنها حرفی که با هم می زدیم این بود که دوات یکدیگر را اگر کاری با آن نداشتیم می خواستیم. وقتی نامه نمینوشتیم یا سر کلاس نبودیم هر کدام از ما فقط توی لاک خودمان بودیم من معمولا در روزهای آفتابی برای دیدن گروه های نمایش به روزهای اطراف می رفتم و روزهای بارانی یک گوشه خوش پیدا می کردم و می نشستم کتاب می خوندم. آن هم درست به فاصله یک طول دست از میز پیم پانگ. دوره آموزش سه هفته طول کشید و در یک روز شنبه که سیل آسا باران می بارید تمام شد در ساعت هفته آن شب آخر افراد ما همه قرار بود با قطار به لندن برویم و در آنجا آنطور که شایع بود به پیاده نظام و بخش های معرفی شویم تا برای روز آغاز عملیات احزار شویم. در ساعت سه بعد از ظهر من دیگر همه لوازمم را توی کیف سروازی جا داده بودم از جمله یک کیف برزنتی ماسک ضد را که پر از کتاب بود که از آن سوی اقیانوس آورده بودم. ماسک که گاز را چند هفته پیش از آن که توی کشتی موریتی نبودم از روزنه بیرون انداخته بودم با اینکه کاملا می دانستم که اگر دشمن یک وقت گاز به کار ببرد هرگز به موقع دستم به آن نمی رسد. یادم میآید آید که مدتی طولانی پشت پنجره کلبه اردوگاهمان ایستاده بودم و باران دلتنگ کننده را که اریب می بارید نگاه می کردم. و انگشت سبابم به نفهمید درد می کرد. از پشت سر، صدای خشخش عصبانی کننده قلم های خودنویس زیادی را بر صفحه های کاغذ پست هوایی می شنیدم. ناگه از پشت پنجره رفتم و بارانیم را پوشیدم. شال گردنم را بستم. گالش را پوشیدم. دستکش های پشمیم را دست کردم و کاسکتم را گذاشتم کاسکتی که هنوز که هنوز است برایم دست میگیرند که به سلیقه خود، کچ بر سر میگذاشتم و اندکی تا روی گوشهایم پایین میکشیدم. سپس بعد از میزان کردن ساعتم با ساعت توی آبریزگاه، قدم زنان از روی تپه سنگی و طولانی و خیس سراسیر شدم و راه شهر را در پیش گرفتم. اعتنایی به رعد و برق که اطرافم را روشن میکرد نداشتم. رعد و برق گهگاه شماره روی لباسم را منعکس می کرد. در مرکز شهر که شاید از همه جای شهر خیزتر بود، جلوی کلیسایی ایستادم تا تابلوی آگهی آن را بخوانم بیشتر به این دلیل که اعداد برجسته سفید رنگ روی زمینه سیاه توجه مرا را چرب کرده بود. اندکی هم به این دلیل که پس از سه سال ماندگاری توی ارتش به خاندن تابلوهای آگهی عادت کرده بودم. روی تابلو نوشته شده بود که در ساعت سه تمرین آواز دسته جمعی بچه ها شروع می شود. ابتدا به ساعت مچی خود و سپس دوباره به تابلوی آگهی نگاه کردم. روی یک بر کاغذی که چسبانده شده بود، نام بچه هایی که انتظار میرفت در تمرین شرکت کنند، ردیف شده بود. زیر باران ایستادم و همه اسمها را خواندم. سپس پا به کلیسا گذاشتم. دوازده سیزده نفر اینجا و آنجا روی نیمکت‌ها نشسته بودند. روی زانوی چندین نفر از آنها گالشای های بچه گانه به طور وارونه دیده میشد از میان نیمکت‌ها گذشتم و در ردیف جلو نشستم. توی جایگاه کرسی خطابه نزدیک به 20 بچه 7 تا سیزده ساله که بیشتر دختر بودند، تنگ هم در سه ردیف روی صندلی‌های تالار نشسته بودند. در آن لحظه مربی همسرای آنها زنی تنومند با لباس پشمی مردانه به آنها اندرز می‌داد که وقتی آواز می‌خوانند دهانشان را بازتر کنند. از آنها پرسید که کسی تا حالا داستان گنجشک کوچکی را شنیده که جرئت کرد بی آنکه نوک کوچکش را باز باز باز کند، آواز بخواند؟ ظاهرا کسی نشنیده بود چون همه با نگاهی توهی به او خیره شدند. آن وقت او دنباله ی حرفش را گرفت و گفت که درش میخواهد همه بچه هایش معنی کلمه هایی را که میخوانند درک کنند نه اینکه مثل توتی های زبان نفهم، فقط ادا کنند. سپس نوتی را با دیاپازون خود نواخت و بچه ها مثل وزن بردارهای نابالغ دفترهای خودشان را دست گرفتند. آنها بدون همراهی با آهنگ یا دقیقتر گفته شود بدون هماهنگی با یکدیگر آواز می‌خواندند. صدایشان بیان که احساساتی باشد خوش آهنگ بود تا آنجا که اگر اندکی بیشتر تمایلات مذهبی داشتم به سادگی به حال خلسه فرو می رفتم. دوتا از بچه هایی خیلی کوچکتر گام را اندکی می کشیدند. اما البته تنها آهنگساز می توانست به خطای آنها پی ببرد. من در عمرم این سرود مذهبی را نشنیده بودم. اما دلم میخواست که دوازده سیزده سطری باشد. چهره تک تک بچه ها را برانداز کردم و با خصوص یکی از آنها را. یعنی بچه ای را که به من نزدیک تر بود بر روی صندلی آخر ردیف جلو نشسته بود زیر نظر گرفتم. او دختری بود که سیده سالی داشت. موهای صاف و بورش تا نرمه گوشها می رسید پیشانی زیبا و چشمهای دلفریبش به گمان من همه چهره های آنجا را از سکه انداخته بود صدایش آشکارا اما نه به این دلیل که نزدیک من بود با صدای بچه های دیگر فرق داشت صدای یک پرده از صداهای دیگر بالاتر شیرینتر و مطمئنتر بود و خود به خود دیگران را به دنبال می کشند. اما این دختر جوان به ظاهر از توانایی خود در سرودخوانی یا از این نظر که در چنین زمان و مکانی سرود میخواند تا اندازه گرفته به نظر می رسید. دوبار میان خواندن سطرهای شعر متوجه شدم که خمیازه کشید. مثل زنها خمیازه کشید. با دهان بسته. اما از نظر من دور نماند. چون لرزش پرههای بینیش او را داد در لحظه ای که سرود تمام شد مربی دسته همسارایان به نظر طولانی درباره باره آدم پرداخت که انگام معذی کشیش نمی توانند پاهایشان را بی حرکت و دهانشان را بسته نگه دارند. دریافتم که قسمت تمرین آواز مراسم تمام شده و پیش از آنکه جادوی آواز بچه ها را صدای ناهنجار مربی بشکند، بلند شدم و از کلیسا بیرون آمدم. باران بیشتر شده بود. خیابان را در پیش گرفتم. توی کافه صلیب سرخ را از پشت پنجره نگاه کردم. سربازها ها پشت پیشخان، تنگ هم دو پشت و سه پشته ایستاده بودند. صدای توپ های هم از پشت شیشه اتاق دیگر به گوش می رسید. از خیابان عبور کردم و پا به یک کافه آزاد گذاشتم توی کافه جز یک پیشخدمت زن میانسال که از قیافش می شد بیشتر میل دارد مشتریش بارانی خشک پوشیده باشد کسی نبود. بارانیم را با دقت تمام از جارختی آویختم و سپس پشت میزی نشستم و چای و نانه برشته دارچین زده سفارش دادم. از صبحان وقت اولین باری بود که با کسی حرف می زدم. بعد توی همه جیبهایم و حتی جیبهای بارانیم را گشتم و سرانجام دو نامه قدیمی پیدا کردم و دوباره خواندم. یک نامه از زنم بود که شهر داده بود فروشگاه شرفت خیابان 88 از رونق افتاده. و دیگری از مادر زنم بود که خواهش کرده بود در اولین فرصتی که پیدا میکنم و از اردوگاه بیرون می مقداری کاموا برایش بفرستم. مشغول خوردن اولین فنجان که بودم خانم جوانی که توی دسته همسرایان براندازش کرده بودم و صدایش را شنیده بودم پا به کافه گذاشت. گیسوانش خیس آب بود و لبه هر دو گوشش دیده می شد. همراهش پسر خیلی کوچکی بود که به یقین برادرش بود. دختر، با دو انگشت، کلاه او را طوری از سرش برداشت که گویی یک نمونه آزمایشگاهی است. به دنبال آنها زنی با قیافه جدی و کلاهی از ریخت افتاده که احتمالاً پرستارشان بود وارد شد. عضو دسته همسرایان، قدم زنان که پیش می آمد، کتش را در آورد. میزی انتخاب کرد، از دیدگاه من میز خوبی بود، چون درست روبروی من در فاصله دو تا متری قرار داشت. او و پرستار نشستند پسر کوچک که سالی داشت هنوز آماده نشستن نبود کت پشمیش را به سرعت از تنش درآورد و پرتاب کرد سپس با قیافه خشک و بیروه بچه های شیطان مادرزاد به طور مرتب صندلیاش را چندین بار جلو برد و عقب کشید و در آن حال توی چشم پرستارش نگاه می‌کرد تا او را عصبانی کند پرستار آهسته دو سه بار آمرانه به او گفت که بنشیند و تأکید کرد که ادای میمونها را در نیاورد. اما فقط وقتی خواهرش با او حرف زد، برگشت و پشت کوچکش را رو روی نشیمنگاه صندلی گذاشت. بیدرنگ دستمالش را برداشت روی سرش گذاشت. خواهرش دستمال را برداشت باز کرد و روی زانوهایش پهن کرد. وقتی که چای آنها را آوردند، عضو دسته همسرایا متوجه شد که به جمع آنها خیره شدم، او هم با همان چشمهایی که همه چشم ها رسته که میانداخت به من خیره شد سپس ناگهان لبخندی خفیف و گیرا به من زد این لبخند مانند بعضی لبخندهای خفیف و گیرا به طور اتفاقی شاد بود در پاسخش لبخندی زدم که خیلی کمتر شاد بود و سعی کردم با لب بالایم بتانه موقتی سیاه رنگی را بپوشانم که حفره میان دوتا از دندانهای جلوییم را پر کرده بود چیزی نگذشت که متوجه شدم خانم جوان با وقاری رشک انگیز کنار میز من ایستاده است. پیراهن پشمی شترنجی به تن داشت که به گمانم گران قیمت بود. این پیراهن به نظر من برای دختری خیلی جوان در یک روز خیلی خیلی بارانی عالی بود. گفت خیال میکردم کردم ها از چای بدشان میآید. این ازار نظر آدمی جرت نبود؟ بلکه اظهار نظر کسی بود که دوستدار حقیقت هست یا دوستدار آمار پاسخ دادم که بعضی از ما به جز چای چیزی نمیخوریم. خوریم به او تعارف کردم تا سر میز من بنشیند گفت متشکرم فقط برای یه لحظه بلند شدم و یک صندلی روی به روی خودم به او تعارف کردم و او روی لبه صندلی نشست کمرش را به زیبایی و راحتی راست نگه داشته بود برگشتم تقریبا با عجله تا روی صندلی خودم بنشینم. بیشتر مایل بودم گفتگو را دنبال کنم. اما وقتی نشستم چیزی برای گفتن پیدا نکردم. دوباره لبخند زدم و همچنان بتانه زغال رنگ و پنهان نگه داشتم. گفتم که به یقین هوای بیرون خیلی بد است. مهمان من با صدای روشن کسی که با حرفهای پیش پا افتاده ای ندارد گفت بله خیلی. انگشتهایش را مثل کسی که توی جلسه احزار ارواح شرکت کرده باشد روی لبه میز خواباند. سپس تقریبا بیدرنگ آنها را جمع کرد. ناخانهایش را تا زیر پوست جویده بود. ساعت مچیش که ظاهرش به ساعتهای نظامی میرفت، بیشتر شبیه ساعتهای زمانسنج دریا نوردی بود. صفحه آن نسبت به مچ ظریف او بیش از اندازه بزرگ بود. دختر بیان که لحنش احساساتی باشد گفت. شما تو تمرین همسارای حضور داشتین، من شما را دیدم. گفتم که بله، آنجا بودم. و صدایتان را که از صدای دیگران متمایز بود شنیدم. گفتم که به گمان من صدای خیلی قشنگی دارید. سرتکان داد. میدونم، خیال دارم خاننده هرفهی بشم. جدی؟ تو اپرا؟ نه، خدایا، میخوام خواننده جاز رادیو بشم و خروارها پول جمع کنم. بعد وقتی سی سالم شد خودم بازنشسته کنم و برم توی مزرعه در آهایو زندگی کنم. کف دستش رو روی سر خیسش کشید و پرسید میدونین چه چجور جاییه؟ گفتم که چند بار با قطار از آنجا گذشتم اما درست نمیدانم جایی است. یک تک نان دارچین زده به او تارف کردم. گفت خیر متشکرم راستش من مثل پرنده ها میخورم. خودم تکیه نان برشتگاه زدم و شرح دادم که زمین های اطراف اوهایو خیلی سنگلاخ است. میدونم اینو یه آمریکایی به من گفت. شما یه یازدهمین آمریکایی هستین که ملاقات کردم. در این وقت پرستارش به او اشاره کرد که فوری به سر میزشان برگردد. از این نظر که دست از مزاحمت مرد بردارد. اما مهمان من به آرامی صندلیش را یک دو دو سانتی‌متری جابجا کرد تا هر نوع ارتباط ممکن دیگر را با میز آشنا قطع کند. به سردی پرسید شما به اون مدرسه ضد جاسوسی روی تپه میرین سربسته پاسخ دادم که برای درمان به دوان شایر آمدم گفت جدی؟ خودتون میدونین که من دیروز به دنیا نیومدم گفتم که در این مورد شکی ندارم برای یک لحظه مشغول چای خوردن شدم اندکی به صرافت سراوزم افتادم و سعی کردم راست روی صندلی بنشینم مهمانم متفکرانه گفت، شما برخلاف آمریکایی های دیگه خیلی باهوشین. به او گفتم اگر به راستی اینطور فکر می کند، حرفش چاپلوسانه است. و اضافه کردم که چون این حرفی برازنده نیست، سرخ شد. روشن بود که برایم احترامی قائل است که خود را شایستش نمیدیدم. راستش بیشتر آمریکایی هایی را که دیدم، مثل حیوان ها رفتار می کنن. اونا ریز به جون همدیگه میافتن و به هم بد و بیرا میگن و میدونه یکی از اونها چه کاری کرد؟ من سرتکان دادم. یکی از اونها یه بطری خالی ویسگی رو پرتاب که طرف پنجره خالی من خوشبختانه پنجره باز بود. به نظر شما این کار اقلانه است. مسلما عاقلانه نبود اما من حرفی نزدم. گفتم که خیلی از سربازها در همه جای دنیا فرسنگ ها از دادگاهشان دورن و میان آنها ادهی کمی پیدا میشوند که توی زندگی دلخوشی داشته باشند. گفتم که فکر می کنم خیلی از مردم خودشان به این موضوع رسیدند. مهمانم سرسری گفت ممکنه. دوباره دستش را به سر خیص خود کشید. چند تار گیساوان بورش را با انگشت گرفت و سعی کر لبه گوشهایش را با آن بپوشاند. گفت موهام خیص آب شده. قیافه زشتی پیدا کردم. توی چشم نگاه کرد و گفت موهان وقتی خوش بشه کاملا فر داره پیداست پیداست موهاتون فرداره گفت البته مجعد نیست بلکه فردار هست شما زن دارین؟ گفتم که دارم سرتکان داد زنتونو خیلی دوست دارین؟ خیال نکنین میخوام در مورد شما کنچکاوی کنم گفتم که در آن صورت جلوی شما رو میگرفتم دستها و مچهایش را رو روی میز گذاشت و جلوتر آورد. یادم یاید که درم میخواست با آن ساعت مچی که بسته بود و صفحه قولاسایش کاری میکردم. مثلا پیشنهاد میکردم که سعی کند دور کمرش ببندد. دختر گفت من معمولا زیاد اهل معاشرت نیستم و توی چشمهایم نگاه کرد تا ببیند معنی کلمه ای را که به کار برده میدانم یا نه. من اشاره نکردم که چیزی دستگیرش شود. آن وقت گفت، من صرفا به این خاطر سر میزتون اومدم که فکر کردم خیلی تنهایین، قیافتون اینو نشون میده. گفتم که درست میگویید، احساس تنهایی میکردم و خوشحالم کردید که سر میزم آمدید. دختر گفت، دارم تمرین میکنم آدم دلسوزی سوزی بشم، خالم میگه که من رفتار خیلی سردی دارم، و دوباره روی سرش دست گذاشت، من با خالم زندگی میکنم. اون بی انداز آدم مهربونیه. از موقعی مرک مادرم هر کاری از دستش برمیاد انجام میده تا منو چارز احساس ناراحتی نکنیم. جای خوش وقتیه. مادرم آدم بی باهوشی بود. خیلی وقت و دستخوش احساسات میشد. با زیرکی خاصی نگاهم کرد و پرسید. به نظر شما رفتار من خیلی سرده. به او گفتم که به هیچ وجه. در حقیقت کاملا هم برعکس است خودم رو معرفی کردم و از او خواستم خودش رو معرفی کند دو دلمانو گفت: اسم کوچی که من ازم است فکر نمی کنم کار درستی باشه که الان نام خانوادگیمو ما بگم من لقبی دارم و ممکنه شما از اون آدم هایی باشین که تحت تاثیر لقب قرار می گیرن آمریکایی ها اینطورن خودتون که میدونین گفتم که فکر نمی کنم من اینطور باشم اما فکر خوبی است که برای مدتی از گفتن لقبتان خودداری داری کنید. در همین وقت نفس گرم کسی را در پشت گردنم احساس کردم. سرم را برگرداندم چیزی نمانده بود بینیم به بینی برادر کوچک ازمه بخورد. او بی به من با صدای زیر کر به خواهرش گفت خانم مگلی گفت که باید بیای چایی تو تموم کنی. پیغامش رو گفت و خودش رو به صندلی طرف راستم میان من و خواهرش رساند. با علاقه زیاد چشم او دوختم با آن شلوارک قهوه ای رنگ، نیمتنه کشباف آبی سیر، پیراهن سفید و کروات راه را بسیار جذاب به نظر می رسید. او هم با چشم سبز سیرش به من خیره شد. پرسید. چرا توی فیلمها مردم یه وری هم رو می بوسن؟ گفتم. یهوری این موضوعی بود که مرا هم در کودکی متعجب کرده بود گفتم حدس میزنم علتش این باشد که بینی هنرپیشهها آنقدر بزرگ است که نمی‌توانند از روبرو رو کسی را ببوسند اسم گفت اسمش چارلز نسبت به سنش بیاندازه باهوشه چشمهاش که یقینا سبزه. اینطور نیست چارلز چارلز نگاهی حاکی از بی‌اعتنایی به من انداخت که در خور سوالم بود. سپس آنقدر رو به جلو و پایین وول خورد که همه تنش زیر میز رفت. جز سرش که به شیوه پل رفتن کوشتگیرها روی نشیمنگاه صندلی ماند. با صدایی خسته خطاب به جانب سقف گفت: نارنجیان. میزی را گرفت و روی صورت زیبا، کوچک و خشک و بیروهش کشید. ازمه گفت. گاهی باهوش، گاهی نیست. چارلز میگم بشین رو صندلی چارز دیگر از جایش تکان نخورد گویی نفسش را توی سینه نگاه داشته بود بهانه پدرمون میگیره تو شمال آفریقا کشته شد به شنیدن این خبر اظهار تأصف کردم ازم سر تکان داد پدر براش میمرد متفکران ناخون شست خود را جوی خیلی زیاد به مادرم رفته. چارزو میگم. من درست به پدرم رفتم. به جویدن ناخونش ادامه داد. مادرم کاملا زنی احساساتی بود. برونگرا بود. پدرم درونگرا بود. با وجود این ظاهرم برای هم ساخته شده بودن. پدر از آنجا که صاف و ساده بود بیشتر یه زن دلسوز و روشنفک به دردش میخورد تا مادر. پدر نابغهی بسیار با استعداد بود. من سراب گوش منتظر کسب اطلاعات بیشتری شدم اما خبری نشد سرم را پایین انداختم و چارز را نگاه کردم که حالا یک طرف صورتش را روی نشیمنگاه صندلی گذاشته بود وقتی دید که او را نگاه می کنم با حالتی خابالود و منصومانه چشمایش را بست سپس زبانش را بیرون آورد زبانی آنقدر دراز که آدم را ترس بر می داشت. و هوی بسیار بلندی کشید که مردم توی کشور من برای یک مربی بیسبال میکشن که ششمایش خوب کار نمیکن قهوهخانه تا حدودی به لحظه درآمد ا اسمه که به ظاهر که نخورده بود گفت: بس کن سپس گفت یه آمریکایی رو دیده که تو صفحه ماهی و چیپس این کارو کرده و حالا هر وقت خاصلک سربره تکرار میکنه بس کن دیگه وگرنه یه راست میفرستمت پیش خانم مگلی چارلز چشmay درشتش را باز کرد که نشان بدهد تهدید خواهرش را شنیده. اما با وجود این نظر نرسید که چشمش به حساب آمده باشد. دوباره چشمهایش را بست و یک طرف صورتش را همچنان روی نشیمنگاه صندلی نگه داشت. گفتم که شاید بهتر باشد این را منظورم هوی یاد شده بود. برای وقتی بگذارد که هر جا لازم شد خودش را با لقبش معرفی کند البته در صورتی که لقبی داشته باشد از نگاهی طولانی و نسبتا سرد به من کرد و با چهره بشاش گفت شما شوخی های خنکی میکنین پدر میگفت که من اصلا اهل شوخی نیستم میگفت چون اهل شوخی نیستم نمیتونم به مقابله زندگی برم در حالی که چشم از او بر نمی داشتم سیگاری روشن کردم و گفتم که فکر نمی تو یک موقعیت بحرانی از شوخی کاری بر بیاید پدر می گفت که برمیاد این گفته از اعتماد حکایت می کرد نه مخالفت این بود که بیدرنگ سری تکان دادم و گفتم که پدرش احتمالاً از نظر طولانی جانبداری می کرده در حالی که من از نظر کوتاه. حالا این حرف چه معنی می دهد بماند اسم پس از لحظهی گفت. چارز فوقالاده براش بیتابی میکنه. اون فوقالاده آدمی دوست داشتنی بود. بیاندازم خوشگل بود. البته نمیخوام بگم که ظاهر آدم خیلی با اهمیته اما خب دیگه خوشگل بود. چشمهای بسیار گیرایی داشت. آن هم او که فوقالاده مهربون بود. سرتکان دادم. گفتم که خیال میکنم پدرتان از فرهنگ لغات خارقلادهی برخوردار بوده. ازم گفت. بله کاملا. گنجینه لغت بود. آماتور بود البته. در این وقت ضربه ای که تقریبا سی خونک بود. از جانب چارلز بر شانم احساس کردم. رویم را رو به او کردم. حالا تقریبا به طور معمولی روی صندلی نشسته بود. فقط یک پایش را زیر نشیمنگاهش جمع کرده بود. با لحن جیغ مانند پرسید؟ دیوار به دیوار چی میگه؟ جوابی ای رو بدین متفکرانه چشمایم را به سقف دوختم و با صدای بلند سال را تکرار کردم سپس با گیجی رویم را به چارس کردم و گفتم که چیزی به نظرم نمیرسد. رسد سیخونک دوباره به تنم نواخته شد و با صدای بلندی گفت قرار ملاقات اون گوشه این موضوع برای خود چارس از همه چالبتر بود چون از خنده روده بر شد ازمه هم مجبور شد برود پشت سر او و مثل اینکه سرفه کرده باشد و بخواهد آرامش کند به پشتش زد و گفت بس کن دیگه برگشت روی سندلیش نشست با هر کس که روبرو میشه همین رو میپرسه و هر بار هم ریسه میره معمولا وقتی میخنده آب از دهانش راه میافته خواهش میکنم بس کن دیگه. گفتم اما این بهترین معمایی بوده که تو عمرم شنیدم و چارلز را نگاه کردم که کم کم داشت حالش سر جامی آمد چارلز در پاسخ به این تعریف باز خودش را رو روی صندلی جمع کرد و صورتش را تا زیر چشمها با گوشه‌ای رومیزی پوشاند سپس با چشمایش که از بالای رومیزی پیدا بود نگاهم کرد نگاهی که پر از شادی فروخورده و غرور کسی بود که یکی دو معما بیمانن می داند. از از من پرسید؟ اجازه میدین سوال کنم که پیش از ورود به ارتش چه کاری داشتین؟ گفتم که اصلا کاری نداشتم و فقط یک سالی است که دانشکده را تمام کردهام اما دلم میخواهد خودم را داستان نویس حرف ای ببدم سر سرتکان داد و پرسید چیزی چاپ کردین؟ سوالی بود آشنا اما همیشه ناراحت کننده سوالی که بارها جواب داده بودم شروع کردم شر بدهم که چگونه بیشتر ناشران آمریکایی یک مشت آدمه ازم میان حرفم دوید نوشته های پدرم خیلی عالی بود چند تا از نامهاشو برای آیندگان نگه داشتم گفتم که ظاهرا فکر خوبی است. باز چشمم به ساعت مچی زمان سنج صفه بزرگش افتاد پرسیدم که ساعت مال پدرتان بوده؟ سرش را پایین انداخت موقرانه به ساعت مچیش چشم دوخت و گفت بله بوده پیش از اینکه که منو چارزا تنها بذاره این ساعت رو به من داد با خودپسندی دستش را رو از روی میز بلند کرد و گفت البته صرفا به عنوان یادگاری موضوع صحبت را تغییر داد و گفت اگر روزی منحسرم برای من داستان بنویسین بی اندازه خوشحال میشم من آشق مطالعم به او گفتم که اگر بتوانم حتما می نویسم. گفتم که خیلی پرکار نیستم. لازم نیست دور و دراز باشه. همینقدر که بچگانه و چرن پرن نباشه کافیه. فکری کرد و گفت. من داستانهایی رو می پسندم که درباره نکبت باشن. سرم رو جلو بردم و گفتم. درباره چی؟ نکبت. من بی اندازه به نکبت علاقه دارم. میخواستم او را وادارم تا بیشتر توضیح بدهد اما حس کردم که چارلز به سختی به بازویم سیخونک میزند رویم را به او کردم و خودم را کمی عقب بردم درست کنارم ایستاده بود با لحنی که غیر دوستانه نبود پرسید دیوار به دیوار چی میگه؟ ازمه گفت اینو که پرسیدی بس کن دیگه چارلز روی یکی از پاهایم سوار شد و بی به حرف خوهرش مهمارا تکرار کرد. متوجه شدم که گره کرباتش درست منظم نیست گره را تنظیم کردم سپس یک راست توی چشمهایش نگاه کردم و گفتم قرار ملاقات اون گوشه کچول مچول همین که این را گفتم که ای کاش نگفته بودم دهانش خود به خود باز شد گویی توی دهان او زده بودم از روی پایم پایین آمد و بیان که پشت سرش را نگاه کند با قرور زیادی به طرف میز خودش رفت ازمه گفت عصبانیه خیلی بد اخلاقه مادرم تمایل داشت اونو لوس بار بیاره پدر تنها کسی بود که لوسش نمیکرد. من همچنان چارز را که نشسته بود و با هر دو دست فنجان را گرفته بود و مشغول خوردن چای بود برانداز میکردم. دلم می سرش را برگرداند اما بر نگرداند ازمه از جا بلند شد آهی کشید و به فرانسوی گفت من هم باید بروم و اضافه کرد شما زبون فرانسه بلدین؟ با حالتی آمیخته از تأصف و گیجی از روی صندلی بلند شدم من و دست دادیم دستش همانطور که گمان می کردم دست آدم عصبی بود و کفش عرق کرده بود به انگلیسی به او گفتم که از مصاحبت با او خیلی زیاد لذت بردم سرتکان داد و گفت فکر می کردم لذت ببرین من نسبت به سنم آدم خیلی پر حرفی هستم. دوباره دستی از سر امتحان به سرش کشید و گفت من بی نهایت به خاطر موها متاسفم. احتمالاً آدم بد قیافه شدم. به هیچ وجه. راستش رو بخواییم فکر میکنم خیلی از فرها دیگه دارن خودشون رو نشون میدن. دوباره به سرعت به سرش دست کشید. پرسید. فکر میکنین در آینده نزدیکی با سری به اینجا بزنین؟ ما روزهای شنبه بعد از تمرین همسارایی میاییم اینجا؟ پاسخ دادم که چه چیزی بهتر از این اما متاسفانه به طور نمی نمیتوانم دوباره اینجا بیایم ازمه گفت گفت:میخوایم بگین که اجازه ندارین درباره نقل و انتقال نظامی ها بحث کنین و از جایش کوچک تکانی نخورد که نشان بدهد میخواهد از سر میز برود در حقیقت یک پایش را رو از روی پای دیگر گذراند و قوزک دو طرفه پاهایش را به هم رساند. پایین را نگاه کرد و نکه کفشهایش را به هم جفت کرد. پاهایش حالت قشنگی پیدا کرد. چون جوراب‌های ساق ساغ سفیدی پوشیده بود و قوزک ها و پاهایش دلفریب بود. سرش را فوری بالا آورد و مرا نگاه کرد و با چهره نسبتا گلگون پرسید. دلتون میخواد براتون نامه بنویسم؟ من نامه هایی که نسبت به سنم بی گیراست. ممنون میشم. مداد و کاغذ بیرون آوردم و اسم، درجه، شماره ردیف و شماره صندوق پستی ارتش رو نوشتم. کاغذ را که میگرفت گفت، من اول به شما نامه می نویسم تا هیچگونه تعهدی در مورد من احساس نکنین. نشانی را در یکی از جیبهای پیراهنش گذاشت. گفت، خداحافظ و قدم زنان به طرف میزش رفت. من یک قوری چای دیگر سفارش دادم و به تماشای آن دو نشستم تا اینکه آنها و خانم مگلی که دیگر جانش به لب رسیده بود از جا بلند شدند که بروند. چارز پیشاپیش مثل کسی که یک پایش چند سانتیمتری از پای دیگرش کتاحتر باشد با حالتی رقتانگیز لنگان لنگان بیرون رفت. به طرف من نگاهی هم نینداخت. بعد خانم مگلی رفت و سپس ازمه که برایم دستکان داد. من هم از سر جایم نیمخیز شدم و دستکان دادم. برای من لحظی عجیب هیجان آور بود.